الحمد <سؤال> و اللهم <سؤال> رو که خالش رو کردیم در آن مخلوقی که متفق شدند، سبب المؤمن یا سبب مؤمنی. از کردیم که برای روشن روانی بحث افتداعن مجملی از کلمات خود مرکمون شیخ خوندیم جوری کاملی از عباراتیشان و محاور بحث و روشن کردیم و بعدم وفاقند شیخ اولا موارده خود آیات مبارکی روایات مبارک بشه یه مطلبی به نظر آمه همه که قبل از روایات کاشی بفتیم شده در تنظیم بحثتون قبل از این بحثی نیستیم بعد بارد رواست بشیم ببینید بحثی که ما در اینجا الان میخواییم انجام بدیم راجع به عنوان سب مؤمنه و همینطور که در خلال کلمات شیف بعدی از مواردش آمد بعدی از مبارده ما عرض کردیم که ممکن است مثلا مثل پیبت آیینم درده سب مؤمنه یا نه مثلا ویا لعن مؤمن میگه عنوانی با عنوان لعن مؤمن عنوانی که ایران معلومه شه عنوان سب و فقط توضیح بدن که بین سب و ریبت اون خصوص منبره لكن خب معلومه که ما عناوین دیگه هم داریم عنوان لعن مؤمن و غیر ظاله و اجمالا در آیات مبارک کتاب لفظ سب این معنی ها به معنی الفاظ زشت دو بار بیشتر به کار برده نشده بلا تصبال لذین یز اون من دون الله و یز صبال الله عدون به غیره این غیر از این آیه ما اصولاً سبی در باره ها نداریم دو بار لفظ مرده ای این سب همین آیه تکرار شد و ارسان حضورتون که این آیه قطعا راجعه الگینی از اونمون دون الله که حالا به همزن میگیم اصنام آلهه تحبیر میکنیم به اسنام که سب به اصنام باشه چیزی دیگه درش ذهب نشد در قرآن روزی به سب ذهب نشد اینش حالا عرض میکنیم بعد از آیاتو یا حالا به اطلاقش یا به تصریحش حمد وقتی مهمه کردن یا لارا در بعض از خروع مسئله که اونها تمنصه شده که بعد عرض میکن اون وقت اصلاً حضور بازدارشون که در این آیه مبارکه ظاهرش این که سبه اسنام حالا من رمضان الگه این یاد اونو میدون الله من میگه اسنام سبه اسنام فی نفسه و مطلقا حرام نیست جایی که تأثیر بگذاره و طرف مقابل به شما رد بکنه الله و یسوب الله از و خیره ایم شما ناسزا نگید تا اونها هم به خدا ناسزا نگن تا اونها هم مثلا خدا رو سب نکنند لذا میشه از آیه مبارکه فهمید که مثلا سب الاسنام که در ظاهر این آیه مبارکه الان منیه حکمش مطلقاً حرمت نیست این سب الاسنام نسبیه مطلق نیست یعنی اگر شما در یک مجمعی بودید، گروهی بودیم که اگر شب بحث نام کردی، کسی خداوند رو صد نمیکنه. خب خوشاوند ظاهرش که مشکل نداره. ظاهرش اینطوره اگر ناسزا بگویید بحث نام که منجر بشه به ناسزا گفتن بر خدا اون درست نیست. به عبارت من اخرا صد در اینجا مطلقا حرام نیست. نسبیت این که مطلعه نسبتش امن چون این آیه مبارکه به مقدار عکس العمل و انفعاله ظاهرش اینطوره پس اگر ما در یک مجموعه ای بودیم که اگر صبعه اسنام کردیم کسی خدا رو فورشین در می مرهم اهل علم بوده عمل روانی بوده نه متلیم بوده دیندار بوده انسان صبعه اسنام بکنه چیزی دونه که که اصلاً صب خدا نمی کنه پس بنابر این آی مبارکه است که ذات بر حرمت صبد اسنام داره این مقید یا بگو مقید یا بگو نسبیه اینطور نیست که صبد اسنام مطلقاً حرام باشه صبد اسنام در جایی که منتهی بشه به صبد الهی اونجاها حرامه اما اگه منتهی نشه ظاهراًش که مشکل نداره چه خاصی نیست از این اصطلاح قرآنی که حالا اینجا الان مطرح کردیم رسولا میتونیم اینجوری نتیجه بکنیم با این مقدمه که از شد صد دو جور متصور میشه و هرمه کشی یکی مطلقه یکی یکی مطلقه که نسبی گذیر مطلقه سر حرامه مخواد طرف مقابل به انفعال بکشه یا به انفعال کشیده نشه و یکی نسبیه اون سر حرامه که به انفعال کشیده باشه حالا اگر این شد محور بحث با این مقدمه که عرض کردم در بحثای آینده از اینجا وارد بحث بشیم که آیا این سبی رو که الان میگیم حرامه مطلقه یا اون هم نسبیه؟ نسبی نصفی بودن و مطلق بودن در اموری که جزوه گناهان کلامی ماست مثل خیبت و کذب و, و مثلا سب و لعن و شط و اینجور چیزا مطلق بودن و نصفی بودن به لحاظ های مختلفی رعایت میشه یکی که این بحثم هم در اروه هم در مناسبت فقه داریم تو اصولم تو اینجا مطرح میشه تو اروه هم به مناسبت مفتریت کز الله مطرح شده و این اختصاص به کز نداره این در کل گناه ها نیست که برمیگرده به کلام سوال اینه که اگر کسی در جایی تنها بود کسی نبود راست که الان که ساعت ده و خورده الان نصر شده بیشت هم بوش خودش تنهاست تنها سه. کلام که قطعا باطل کذبه حالا اگر کذبه از الله گفت در محلی که کسی نبود تنها بود آیا این مفتر روزه هست یا نه مهم که الان محل کلام ماست در اتاقی که اهدی نبود سب مهم شد. قیبر کرد هم تذکر اتاق به مافی به حیث لوسمه به حیث هزاره که لوسمه خب اینو تنهایی گفت یه اینجا اینجاست این مطرح مراد ما اینه بگیم اصلا گفتن این کار حرامه میخواد کسی باشه میخواد کسی نباشه ما توی اتاقی هستی این شما سرشمان نمیشنون شما میگی فلانی مثلا آدم الفاظ زشتی بهش بکار هیچ کسا نمیشنون یا دروغ میگی یا نه می آیا اینها هم جسو گناهان کلامی حساب میشه. یعنی این اطلاق و تغلیظ اون شد واظع از اطلاق تغلیظ نشی. اطلاق یعنی چه مخاطبی باشه چه نباشه. یا نه این نسبیه اگر مخاطب بود حرامه. اگر مخاطب نبود من تنها بودم دروغ گفتم. علال الله علی رسول دروغ گفتم. این چرا مفتروشه؟ کسی نشنده که تکرار میکنه خاصیت صدام همینطوره تو بحث سبب اصولاً در گناهانی که جنبه کلامی داره متعله به کلامه این مشکل پیش میاد و منشه اشفال اینه کلام پدیده اجتماعی اگر من تنها باشم این کلام نیست مثل الفاظ محمد ببین بعضیا بقول اورفانیا شطایات صوفیه همیشه علایق مالایرم تو غزلیاتش مال مثنوی زیاد است مثنوی شعرش خیلی سطحیات داره خیلی مفهمنده لفظ و لغت این کلامی که انسان تو تونه میشه روبه یه تنها باشه با شتهیات و با هرکای محمل و با کلمات و جیغ زدن و اربرداری فهم نمی‌کنه مفهمند کلام واژه توش تاثیر و تاثیر باشه این توش تاثیر و تاثیر نیست نقل و انتقال نیست حتی متفق نیست. لذا این یک بحث را این قسمته که آیا اینم در چه هم مطرح شده تحلیل و اصولیش هم همینه که برگرده به زواهر و رجل زواهر چون این گناه ها نید که آرزن بر کلام کلام هم باید جنبه اجتماعی داشته باشه تفریم متفهم وقتی تفریم متفهم نشد با محملات و خودعبالات یکیش برگم میکنه انسان جیغ بزنه یا کلام بگه تناهی دروغ بگه دروغ بگه راست بگه نه این حسن داره نه اون خوبه داره نه این ثواب داره نه اون عذاب داره هیچ کده نه شلامی سبب همینطور پس بحث اول بر... که از سلم عملا هم در فیق الان وارد شده آقا نگاه تو اره تو بحث مفترال که کسی در اتاق تنها بود کسی نبود کذب علالله هسته جب کذب الله آیا روزه او باطل میشه نمیشه چون کسی نیست بشنوره آیا روزی اون باطل می‌شینه این یک مطلب مسیه دوم همین اینو که هر مبارکه ذکر شده فعل و انفعال رو حساب بکنیم یعنی بگیم سب مؤمن در جایی حرامه که سوی فعل و انفعالی باشه انفعالی باشه اما اگه انفعال نباشه پس ما جایی نشستیم افراد ناعد نمی‌شیم خود شخصا اگه باشه ناعد میشه ما یعنی ردگیری می‌کنه سب بکنیم آیا این سب در این صورت ناسزا این اینا حرامه یا نه این در جایی که انفعال باشه حرامه راج به سبع ظاهر آیه اینی که نسبیه اسنا اسنان مطلقاً معلوم نیست در حرام باشه سبع اسنا چه میخواد به اصلاح کسی باشه یعنی منفعل بشه کسی یا نشه نه ظاهرش جایی که مشکل باشن منفعل بشه پس اونجا نسبیه اما راجب صب مؤمن که ان شاء کرد نکته فنی اینه که ظاهرا نسبی نیست چه کسی باشه متاثر بشه چون مؤمن متاثر بشه چه اگه آدم میبوشه لاوابی باشه متاثر نشه ظواهر نصوص این است که صب مؤمنین از قبیل سبع اسنام نیست سبع اسنام نسبی اگر انخعذ بود لا تصور دین ازون دورور الله و یصبح الله عادبا به غیر ع. اما راجع به سب مؤمن غیر نیامده. ظاهرا به این لحاظ سب مؤمن اطلاف داشته باشه نصفوی نیست اطلا به این معنا مطلب نصفوی نیست. بله یه بحثی اخیرا بعضی از آقایزن سیگالا یا متفزن یا غیر منتفق، یا مثلا دلشون مخواد مستقرشه که آیا سبب صحابه هم از قبیل سب مؤمنه که مطلقه یا سبب صحابه مثلا برفرد یا لاغل عزیز معینی از صحابه افراد معینی از صحابه اینا سببشون حرمتش نسبیه مثل سب آلهه میمونه مثل سبب اسنام میمونه مثلا اگر در مجموعه هستن همه شیعه هستن هم یا چیزی به اون چند نفر یا به مطلق صحابه سببی کردی مشکل نداره چون انفعالی دنبالش نیست مثل سبب اصنام یا نه سبب صحابه, صحابه مطلقه چی میخواد انفعال باشه چی میخواد انفعال نباشه این از قبیل سبب به اصطلاح مؤمنه نسبی نیست چون دیدن بردی ها شاید دارن که سبب صحابه از قبیل سبب آله و اسنامه. اگر این به دنبالش بود انجام ندین اما اگر این به دنبالش نبود فی نفسه مانعی نداره عنوان سبب مؤمن و حرمت سبب مؤمن شامل اون نمیشه پس این بحث نسی و مطلب و دوم این قسمت البته ما فعلا در اون مقداری که از روایات ما دیدن من دیدم شاید باشه که من نگیده باشم که حتما همینطوره و قاعدتاً نهیداره هتما قاعدتاً همینطوره ما فصلی رو در روایات با عنوان سب به صحابه نداریم اونی که از اهل بیت الان داریم عرض کردم اون روزی روایات در تشیه هست انا نصبه ما، یعنی اولی و دومی که الان بحثی سندی داره به هم بحثی محطی داره که اینش رو بعد عرض می اما عنوان سب به صحابه رو ما نداریم ما الان من در حساب کشت خود هم نه مطلقه من ندیدم اما در مسادر آمه هست این از عنوان سبب مؤمن سبب مؤمن و سباب المسل اصلا در مسادر آمه من به اصحابی جلی این بین بی عنوان داری این شانا میخونه توی بحث سبب مؤمن به این مناسبت متعرض روایات عامه و جز اجایبه امری واقعاً من گفتم اوقات متحیرم در مسئله چهجور جواب تضایا به عرض شده من سب بر انبیا فقط خضر و من سب به اصحابی جله این تعبیر رو اهل عامه دارا رسول الله در این کتاب جامعه سری هم است شاء الله میاریم میخونیم اونجا ما متعرضش میشی از عجایب اینه که این روایت صریح در صحابه اصحابیه این رو عامه نذارن الا ان موسى مجرد سندش موسی مجرد در میگیره اینم جزء اشکاله از موسف نجفر این عبیه صادق این عبیه الباقر و همی سلسنسن این عمیه علیه السلام این رسول الله قال منصب بلعنبیاء کفر و منصب بأسهابی جلد اینم جزوه واقعا اجایب عمره که در روایات ما کلا عنوان سبت به رو ندارید من بخص این را قبل از بگیم، کاش این فائده رو دیروز میگفتیم قبل از ورود در روایات که اجمالا اطلاعی پیدا بیشه در نحوه بحث و کیفیت بحث که ما بحث رو چی جوری میخواییم اگر این روایت که بطرح هم نیست از موسف نجعفر سامان خیلی عجیب هم از سنیا هست در این مطلب از روایت شیعه استفاده کردم الان فعلا به شیعه حمله میکنه اما از روایت خود ما منصف و اصحابی جله به این مطلب در کتاب اهل سنت از موسف ن علیه قال رسول الله من سبب از اونجا فقط کفم اگر اون متن صحابه باشه که ثابت نیست معلوم میشه که سبب صحابه هم مطلقه از قبیل صدا، اسنام نیست پس این در ذهن مبارکتون باشه که آیا سبب صحابه مؤمن مطلقه چه میخواد انفعال توش باشه یا ندوش یا نسبیه اگر انفعال توش بود حرامه انفعال توش نبود حرام نیست انصافش خواهیم گفت زواهر روایت مطلقه در صد مومن زواهر روایت چه میخواد منفعل بشه چه میخواد منفعل نشه اون حرامه. مثل صدر اصنام نیست ظاهر آیه صدر اصنام نسبیه یا غیر مغیر بزن پس این معنای دوم مطلق و نسبی معنای سوم ممکنه ما با یک نظر از اطلاق و نسبی رو قبول بکنیم یا نسبت به بعضی از الفاظ مثلا بگیم گفتن این الفاظ صد نیست یا نسبت به بعضی از اشخاص بگیم مثلا در اینجا صد جاییت اون صد نیست نسیهه. مثلا یه موردش رو موم چخ با بالمان متظاهره به ف حالا ما انشاال در توضییه خواهییم گفت که متظارره به خ در باب غیبت معان داره ری در باب نه اونجا هم توضیح خواهیم داد یه ن کسی متجاهره به شراب خویه بشگن شراب ها مثلا شار و گ و عرب ها این ظاهرن اشکال نگه متجاهره احتمالا این مشکل نباشه یعنی اصلا شاید حساب نشه اما اگر ترسیم به همین شرافخار بگن بیشرت بیغیرت بی ناموس و تجا الفاظ یاد نبی رفتی به اون فسط تظاهرش نداره سب شخص بشه به اون قیل از فعلی که تظاهر به اون داره ظواهر عبارات شیخ است که سب متجا... متظاهر این به اصطلاح جایزه ان شاء گفت که این هم روشن نیست متأسفانه این مطلبی که ایشون گفته شده روشن پس یه نسبی و مطلق می توانیم راجع به حالات خود شخص در نظر بگیریم من جمله از مواردی که البته مرحوم شیخ ذکر نکرده اینجا نیاورده اگر آلمایند از نگاه بفهن یکی دو سه روز بحثا تفسیر راه بفهن شما ما به اینجوری وارد بحث بعد از ساعت دو صبح دیگه وارد بحث بشیم یکی هم خود شیخ در بحث قیبت آورده بحثی به این معناه که اگر کسی قیبت انسان را انجام داد از یک انسان هم میتونه قیبت رو بکنه یا به بخش کسی به انسان ظلمی کرد بیزاری کرد لیکن مخفیانه این کار کرده سعی کرده کسی مرتلع نشه قیبت او جایده بین این عنوان. در اونجا چون از کارم بعد از آیتان شده در اونجا تمسا شده با یه مبارک الا یه بله جهر به سو الا منظوره این جهر به سو امنالقول تفسیر شده به غیبت. کسی که مظلوم واقع شده میتونه غیبت بکنه اگر پرسلیم ظالم اون کار رو که انجام داده در خفا انجام داده راضی هم نیست گفته بشه اما مظلوم این رو میتونه بگه اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه الجهر به سو ابن شامل سب بر میشه در کلا مرمون شیخی اینجا نه بارده مرمون شیخ لا یو الله الجهر به سو ابن الخور احتمالا شامل سب بر بشه چون خداوند کلمات سو رو قول سو کلامه سخن سو رو گفتار سو و زشت رو خداوند دوست نداره این ظاهران شامل شخص سببن بشه وقتی بگیم این کسی مضمون واقع شد یه ستان سال فوشت رو داله الا به این, این عنوان یعنی این مسئله سر نسبیه مطلقا حرام نیست ممکنه در به از حالاتی مثل مظلومیت اگر در نوار درسی بشه گفت یا قابل انطباق ما از قابل انطباق اطلاق آیه مبارکه من معنی اعضاء علیکم ترصد علیه به مثل اعضاء علیکم یعنی بگیم معنیش اینه که آکسی شما پوش داد لازم نیست شما همون رو بشین کارو درین بنز اطلاق اون یک جو گفتین اطلاق جوجه ظاهر آیه بگیم اطلاق و معنی اعضاء علیکم پس اگر کسی سب به انسان این معنیش چیه؟ معنیش اینه که حرمت سر نسبیه اینجا نسبت به چی حساب میکنن؟ به اون طرف مقابل که انسان مخواد سب به اون انجام بده. بگیم اگر طرف مقابل ظالمه البته آیه مبارکه همینطور که در قرآن هست خیلن اینجور قراعت میشه اما قراعت الا منظلمه نم شده صافر هم آیه خیلی سنگینه یعنی باید باید کار بشه یکی چون ظاهر آیه اینه که خداوند الفاظ زش و گفتار زش رو دوست نداره مگر کسی که مظلومه یعنی نداره از ما الفاظ زشته به کار خیلی اونم از به سو یعنی بلند مثلا با صدای بلند گفتارهای زشت رو و سو رو یعنی بعد انشاءالله توضیحاتش رو چون بعد از خام که پس بنابراین اونجا الا منظوره در قران فعلی قرائت فعلی منظوله الا من ظلمنن شاف هست در قرائاتش الا من زلم نه یه بله خویی جهر دستو من الکول الا من زلم اونجا آن از مشهور الا من زلم این هم راجبیم پس دانوییم پس اگر گفتیم که صبح موقع مل حرام مسلرا یعنی اگه کسی هم به تحوش لازم نداری بود صبح بکنی خب دارویش الفاظ به کار برد شما همه این معنی مطلع. اگر گفتیم نسبی میگیم نه این نسبیه من درسته سببه مؤمن برم جاید نیست دستان دیگه این آقا انجام بده. چون این آقا زور میکرد یا این آقا اعتدار کرد من اعتدار علیکم فعتدو علیه به مثل من علیکم میتونید ما در این صورت به عنوان اعتدار خود قرآن تحبیه کرد جزا و قرآن اعتدا فقط از علیه به نسبت محدد و علیه یا چون مظلوم و آخر شدی شما حق دارید که این کار رو انجام این در باشن شد این نسبی و مطلق بودن رو کاشی شما دیروز تو بیرد یاد کنم آده یادی بکنیم صداراتون قبل از بود در بودن پس ممکن است اون وقت یک مورد دیگه هم نقطه دیگه نقطه آخری در این مواردیست که خود شاره اجازه گفته شده داده شده ما معتقدیم از در فنی اینها رو استثناء بگیم تخصیص رو به اینها بزنیم در مثل مظلوم بگیم نصبیه در مثل متظاهر رفتیخ شیعه خورده یستثناء منزاله تخصیص نیست تخصیص رو مثل مبتده خورده اداره ایتون اهل الوده و صابت و صبوه هم اونا رو پرشت این تخصیص کرده نه که این نسبی باشه اینجا شارعه اجازه داده این نقطه فنی حقوقیشی تعمل بکنید ما متظاهره به فیصل رو و جایی که ظالم باشه و جایی که اطدا باشه اون رو دخیل در مقروم سب با اونان نسبی ها مطلب برسیم اما اهل بدر رو که شش در اینجا آورده اهل بدر اگر درست باشه, رو سالم باشه،, باشه رو قبول و حتی صالم باشه سمید باشه و قبول بکنید بودن مطرح نیست شارع تخصیص را ثبت کرده تخصیص بحث کرده صد جایز نیست مؤمن از کلمه مؤمن میشه بحث است که بحث داره حالا برطرف این که اهل بدع بدع جوری باشه که از دین خارج نشه و به همین مقدار کافی باشه صفر مؤمن یا که این مؤمن مراد در اونجا مراد مذهبه بلو شیعه بودن حالا نماز نمیخونه متوجهین شراب شرع خود ازجوری لا میکنه معذلۀ از مؤمن شیعه است نه مؤمنه بهونه معنوی است. چون تاجر رو مستقل رو نشون می‌ده. چرا متجاهر بدی چون سب نسبیه نسبت به او وجود نداره. چون تجاهر داره نسبت به مؤکل. نه بدعت در, در دینه. تظاهر به فسقی نداره. آموزه یک اقسام من دراوتی گفته مع عوام مردم نمی‌دونن. نحو می که نحو می فکر فک کنم راست باشه شو عباس نرسوده برش که بره مقدس سردی بگه شراب پاکه خب پس ما شوعب بخندید حالا مولد سردی گفتید مثلا آ پاکه نه رو ذهل خالص بین پاکه لی حلال شو خوبه اگه داخل خون بشه دیگه اصلا هست نمی شه میگن شو عباس سر حلال نمی بله رضا شیخ باهگین فاجر نداره شیخ باهگین که تنه در مقدسی آب آقا سوادی مقدس است علی علمی که غیره نداره غیره این به اینکه مقدس اندیشه خراب بخواد چی سرش میاد حلال و واسه برمیداره حلال و پاک نره مردم سر صومشو فکر نمیکنه بین فضا هستش با هر حال حسین رو ما. این مجبور شده که برای این که مثلا بگه این آقا مثلا این برعتی و راه درستی و رو صد بکنه آنط بکنه اون منظره او رو بیاره پایین تا بگه که مثلا موجب اشتباه دید این بیر از نسوی بودنه این دقیق بکنی فنی فرمیه لکیفیه خود غیبت اونجا چون نسویه چون غیبت در غیاب شخصه وقتی شخص گناه راهنری انجام داده که رو مردم غیابی نداره اونجا واقعا موضوع برداشته میشه نسوی آیا صد برمثل غیبت ن یا سب مطلقه محصه دیگه مواردی که استثناء سبه که اهل بده باشه پس اوشن شد با این ترهیدی که ما در برس الان مطرح کردیم چند تا زایی برس محل کرد این قیردادا این که آیا لعن با سب یکی یا نه اون بحثی دیگه فیل برا اون چی که الان محض نظر ماست اینه که سب و المؤمن حقیقتش چی جوری مطلق و مقید بودنش در چه حدیه؟ این راجعه به اجمال بحث تا اینجا و اما برگردیم به بحث خودمون که در بحث گذشته روایات مسئله رو به اصطلاح متعرض شدیم از کردیم در کتاب حج در جلده هشت این شاقه پردین مرحوم آهای صاحب مسائل کتاب الاشتر رو و در ماه 158 و شهاز مثلا 159 و یه معنای فلسفی این کتاب مناسب است با صب مؤمن روایتی رو در نظر روایت شماره سه بله به نظر گذشت این روایت سه. چون قرآن رسیدیم و خطاله و کفر هم فرج نوکتی تو روایت سه به نظر نگفتم الان اون نوکش الان در روایت 3 ایشون روایت از کتاب کلینی نقل کرده بعد از کتاب برینی نقل کرده بعد در رواه صدوق مرسلن سه مصدر برای شماره 3 مرحوم صاحب وسائل داره اینو فقط مثلا نکتهشو ارزی خواهم که مرحوم صاحب وسائل نمیگه ما غالبا انو خودام ملتفت نشدم نمیذارم ایشون چرا این کارو میکنه مثلا به زاره وظایفم میگم رو بیاره اما استعاب نمیکنه حالا خودش جای دیگه آورده یعنی ای مثلا نمیاره یک بحثی است خودش جای دیگه آورده این خیلی عجیبه اصلا نمیکنه چرا اینش این کارو میکنه من هنوز نفهمیدم مثلا همین روایت رو که شماره 3 با 58 به شماره 12 در 152 به حسب این شاکی که من دارم 599 در 599 12. این 12 اینو از کتاب حسین سعید ندید که کتاب حضور کتابی از اون صرید کتاب حضور در اختیار صاحب وسائل و صاحب بهار بوده از این کتاب نهاروی کردن سبوت کتاب زهب به خود حسین سید معروف, معروف و مشهوره، و که این کتاب به نقره به اجازه رسیده که خیلی مشهوره و به رواستشم نیخون در این شماری 112 اونجا از کتاب زهب نهاروی کرده اینجا در زید حدیث از کتاب زهب نهاروی نکرده خیلی عجیبه بعد داره برعوام صدوقی عبابل اعمال ام محمد ابن حسن جمع ابن الولی استاد ایشان باشه ام الحسین ابن حسن ابن عبان قومی ایشان درست نمیشن سید فقط میدونیم مرحوم حسین سعید که آمد خونه پدر ایشان وارد شده حسن ابن عبان. پسر ایشان بعدها کتب حسین لبان پخش کرد قومی ها به این نسخه اعتماد کرد ما این مقدار میدونیم این همون نسخه است. نسخه ایست که قوم مرحوم حسین سعی و پخش کرده کتابش رو و توسط حسین ابن حسین ابن به ما رسیده ابن ولی لدیشون نرمون کنه این حسین حسین واضحه علایه حاله در این سرخیه 599 دو تا مستر برای حدیث اوورده یکی کتاب زهد حسین و یکی از اقابل الامال صدوق روشن شد در این سرخیه 610 610 این دو تا ساماستار اصلا نیومده، سه ساماستار جیوگده، همون هریس هم است، همون سینسای دارند، هم همون هریس بینه. این یه نکته ای است که آن بکنم، من هم حال الان نمی‌دم احترام که در سار صورت سؤال، خواستم مثلا آخوزی که به کتاب مراجع کنم به همه آبوم مراجع کنم. و این الان نتیجه کدی نداره، اما خیلی یاد نتیجه داره. مثلا در اینجا، با دو سال دارند که یه ضعیف هم. یه جایی دیگه باید سنند همون روایت و اون سلسهیه من آون در این جمعه را جعه میکنم حفظ میکنم به زعف روایت مثلا با میسن در این نقطه رو در کار مرحوم شیخ در نظر دیگه این که ما هنوز نفهم چرا مرحوم شیخ رو آملی این کار رو انجام داده پس بنابراین این روایت کلن بر به کتاب حسین مسعی خلاصه خلاصه یک الان به اسم حسین سید کتاب ذکر الان چاپ شده به نظر میازیم به آنی که اثر از چاپ کتاب دارن به نظر یک تحریج جدیدی هم شده غیر از اون تعریف علی به نظر تحریج جدیدی هست کتاب شده باشی کتاب اثر و دو مربوم کلی برقی از خود حسین سید نذر کرده سه مربوم کلی از احمد از حسین سید نمی دونیم احمد از حسین سید در قم چیده یا در وقتی که در احواز بوده احمد خدمتیشون رفته در بشینیده سه صدوق در اقابل اعمال از طریق ابن الولید این میدونی در قوم شنیده چهار صدوق در کتاب فقیر مرسلن همه باقیم واضحه دیگه کتاب حسنسای دقام مشهور بوده به خاطر شهرت سند را حرس کرده این وضعه حدیث, حدیث معتبره البته به بولانون مبسل است از از که کله این حدیث با این مرس از مشاهیر حدیث رسول الله با تمام اینه که گفتی سباب المسلم خسوقان سباب المؤمن خسوقان این از مشاهیر حدیث رسول الله خدا یک کم زیادی داره و این روایت اون بحثه که الان ما کردیم نشون میده که سباب المؤمن مطلحن خسوقان اون بحث من این مفصل از کردن نصبی بودن و مطلح انصافاً از همه جهات اطلاع داره چی مخواد متظاهره به فیصل باشه یا نباشه ظالم باشه یا نباشه اعتدار بکنه یا نکنه متأثر رد فعل داشته باشه اکسال حمل داشته باشه ظاهر این حدیث مطلقا از قبیل صدب اسنام نیست بله فقط ممکنه در حدیث به لحاظ اینکه که متک... ای باشه یا نباشه تو او تا کन्हाه یا کسی باشه این لحاظ ممکن است به لحاظ اینکه اصلا سر کلام قرار نشه بی این لحاظش منظور اطلاع و شده باشه باریجه اطلاق داره در حیا ربات هم خودتون حساب کنید ما هم چیزی گفتیم باریجه خودمون داره و قتالو کفران و قتال مؤمن کفر البته این محل کلام این حدیث یعنی این حدیث متأسفانه یه شوری محل کلام نه این باریه بذارش هم از نه اون خبرش خبارش معتقلن هر کسی که یکی از خباره انجام داده کافره ولو مثلا زیبست بکنه و خونشی می میگن کافر که زیگه گناه انجام ده گناه شده کافر خبرش به این دوبومی شمسه کنند قطالوه و از جزا خود اهل سنت پرکنی جواب بدن که این حدیث معایل خبرش قطالوه و کفر از اون ورد که اونا جزا مشکول مسلمان هم گذن کفران این جره جتا از اون ور داره که سباب المسلم فسق و چون اونا سباب المسلم رو کفر میدونن خب اون یکی بزرعه اونا اول حدیث فسق عملتونو فسق الهی دوست چون, چون خبرش میگن یا انسان کافر یا مؤمن فاسق قبول ندارن هر خبرش خلاصه هر خبرشی. چی لذا خوارج به لا استثنا به استثنای خودشون شابه نبره هم و همیشه سنی گیر امر میکردن به استثنای خودشون تمام رو بدون استثنا کافر میدونن مردم یه خیلی زحمت نمی‌کشیدن مثلا نحوه اعلام خوارج وقتی مثلا اعلام می‌جورد به شمشیر از خونه که بیرون می‌دونه هر کی جوردو بود می‌کشیدن دیگه همه رو کافر، تمام جامعه اسلامی رو بدون استثنا کافر می‌دونستان به خاطر اینکه فساد و حکام ظالم هستن اینا کافرن مردم ترک امر معروف نه نه غنتر کردن اینا هم کافرن هم حکام کافرن چون ظلم می‌کردن هم مردم کافرن چون ترک امر معروف کردن بعد یه دعوای چند تا ازم بین خواوارا بود که خصوص بچه‌ها رو بکشن یا نکوشن این بینه که محل انقلاب بود از اینکه می‌کشن از اینکه نمی‌کشن حتی نامه‌ای هم به ابن عباس نوشتن که ما تبول در قتل اطفال که آیا رسول الله اطفال رو می‌کشه نمی‌کشه هر خاصه به استثنای اطفال در بقیه دیگه شبهه نلاشن که همه از دم کافرند و همه رو باید کش این حدیث اولش به ذره خواهیشنشون ثباب سبب فسو قد از اول کف نگفت اون دو همیش به خلاف اون آقایی نوکه تاریخو کفت رو بعد توضیح دادن در درستان هست کفت گفتن یک درجه از کف. و الله قبول نکردن که اگر کسی کسی رو کرد شد مقاتله کرد به کفت درست و اکل و لحمی محصیح کن این هم با زده خواهیشه این اکل و لحمی مناسب از واقعا داره، صاحب وستالبین حدیث تو باب قیبت رو بود. اون باب قبلی که خونده هم باب قیبت و حرمت و ماد که حرمت دمه هم نسخ ما در این ری مختلف است آقای مراجعه کن حدیث چماره چهار هم که سکونی بود سباب المومن که المشرف علالحلکه توضیحاتش بودهش به توضیحات دیگه هم داره که بعد ازمه کن حدیث شماره 5 علا حسین ابن سعیفی کتاب زهر من میده در رفت این با کتاب مقابلش رو تحجیم اون چه حتی رو از کرد. این رو از کتاب حسین مستقیم اما فضالت ابن نزار الان چون من خیلی مسرم که ممکنه نکاتفن باشه ما اسم بنام فضالت نزار کلن نداریم مثلا کلن فضالت نزار نداریم اسم عجیب قریبیه این نفسه غیر از که در روحات نداریم قریبیه. انا حسین ابن عبدالله قال قال ابو اینم خیلی عجیبه که فضائل استاد مرحوم کلینی مرحوم حسین صیده با یک واسطه از امام باقر نقل بکنه اون اینکه من الان احتمال میدم حدیث مشرحه یک جاهایی مثلا انا حسین انا عبدالله باشه مثلا اینطوری بعد در بعض از که من مراجعه کردم به کتاب زهره مصحفی رو که معرفی کرده درستن زهدی که قبلا شاب شده بوده سی سال قبل واسه محقق تا میبرن درست نه تونه سه نسخ معرفی بکنه که چی بود در اختیار ایشان اما اون چه که در اختیار ایشان بوده و ازش نهار کرده نسخ روکنی نیستن در ایده از نسخ همینطوره فضالت نظر، عبدال حسین عبدالله قال جعفر و اون قال جعفر محمد و این حال به نظر این رواد خیلی خرابی داره سند روا خیلی مشکل داره فعلا هم به لحاظ مصدر منحسر است در کتاب به اصطلاح مرغوم حسین سعید کتاب و زهد ایشان ارس کتاب و زهده ایشان در مسادر اصحاب اسمیشان برده شده و مرمو حسین سعید یک دور کتاب سی به اصطلاح یک دور فقه رو در سی جلی نیست این بردها اصلا مشهور میشه بین اصحاب حتی موجودن کتب سلاسین مثل که ما میگیم مثلا کتب عربعه این کتب عربعه ها مشهور شد یا مثلا کتب سلاسی متأخر به و وسائل و واخی یه اصطلاحیه اصلا بعضها اینقدر این عنوان مشروع شد اونان فلان لفو کتاب مثل کتب سنسایی مثل کتب سلاسی، یکی از اون کتب سلاسی این سابه زهده ما تقریم ما یا کلیه قبل از بعد از حسین سی دار احیاء خود احوال کتاب زهد داره که لو زهر دیگه چاپ هم شده معروفه علای کتابی به نام کتاب زهد داشته راج به حسین و آثار حسین با جداگانه بحث بشه به هر حال این کتاب زهد حسین سعید سابقا یک تحقیق شده چاپ شده که مشکلات فراوانی داره احتمال میدم جدیدن چاپ شده اگر ادم خبر داشته باشه الان احتمال... کسی خبر داره من نمی‌دونم چی خودم ندارم امور چاپ قدیمه دارم این اون و سه اولی اما احتمال میدم یک جایی شنیدن که این کتاب دو مختلف شده و چاپ شده و هر حال این کتاب الاز تقبیره شما نهر به جاده رسیده الاز این که کتاب زهد باشه احتمالاً محقق کتاب سنگی کرده دفاع بکنه بگه این طور نیزی اشتباه گردهش احتمالا مختصر کتاب زهده اگر این و این مختصر مال علی ابن عبی سعد غزبینی همین علی ابن حاتم که در بحث قبلی هم گفتیم مال کتاب چیز که دارو ترسی علی بن روحیم احتمالا مادی شده علی ابن حاتم غزبینی و این محقه این کتاب سعی کرده اثبات میکنه که علی ابن شاگرد حسین سعید بوده خیلی دیگه کسی دیگیش اصولا مرهوم کلی به دو واسطه از حسین سعید نرم میکنه و علی بن حاتم 20 سال وفاتش بعد از خولمیه. اصلا کتل ناب شاید فایده سنتی باشه. خیلی و اوهام و الفاظی اساسی گرفته شدن. حالا ظاهرش اینه این کتابی که الان به نام زود کافه قمی شده و سی و سال سالغا این کتاب ظاهرا ولی علم و اندلا مختصر علی بن حاتم باشه. احتمال قوی داره. و علی ابن کتاب رو گرفته شاگرد حسین سعید مثل محبوب نیست شاگلش و الان تو این کتاب این حدیث هست نصفه ای کنان داری مثل نصفه صحاب وسائله فرقی نداره این حدیث همی آمده همین کورم آمده لیکن به نظر من خرابی داره به مجرد این ابن نزار زیادی که انفضالت نعیوب نظار مصحفه کرمه اینا حل نمی کنم به نظر مشکلش روایت شدیم روای من کف در عراض ناس عواله الله نقش او يوم القيامه و من کف در غضب او عن ناز، کف الله عنه عذاب يوم القيامه این جزء احادیسی است که تجسم اعماله اینی که میگن مطابق با کتاب و مطابق با سنت ما از مطابق کتاب همینه این جور احادیث چون اینا داره میگه شما اگر غضبت رو فرو بردی خداوند در روز قیامت غضبتتون محسوب میشه اینا جزء است که داره با تجسم اعمال و نفسियत اعمال میکنه که کاری که در دنیا انجام میدید مناسب و همون در قیامت شما بر میگرده. لذا این احادیث قابل قبوله مضمونن قابل قبوله سندش مشکل داره. این مشکل کشریشه. نه می کنم این چیه. نه نه نه نه نه نه. ایچه ایچی زنگی هست کلان کلان کلان کلان که نه. ایچه ایچی هم نه و سالالله ها علالله.